بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلات و سلام على رسول الله صل الله علیه وسلم ببخشین استاد بفرماین شو احساس شوین تانه بگوین بارز از افتاد ما اولین دفعه اینجا آمدیم ام. خود دوستم زبرجان همه ما هم آم امروز کردشان آمدیم ام. چند پیش ما در سلمونی من ریشی ما پل زدم زبرجان گفتم ریش در گفتن که ریش کل کدن گناست استاد مصعب باشا رشاجان دوست ماست و بعضی وقت‌ها این فوماکچی میگه و ورش گفتم که ما یک سنت محمد صلی الله علیه و سلم را کردیم و ای خنده کرد به ما میگه که دقیقاً این 21 در کجا رسیدن نطو و نفک سنت هستی خب درست است جوان ما مطلب تو نگرفتم ان شاء الله دیواره ما بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و, و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم رب اشرح واصللی امری واخل وقت ملیسانانی من لسانی يفقه و قبلی برااد های محترم بسیاری از برادر ما مثل که دو برادر فعلا جنجال داشتن اکثران سوال میکنن درباره ریش و ریش کل کردن و متاسفانه که امروز بعض از مفتی های پیدا شده و عبر مردم روایات می که ریش یک چیز عادی هست و مساله شخصی هر کسی است این اساس موضوع درس امروز ما و شما مسئله ریش تراشیدن و یا گذاشتن ریش و حکم ریش گذاشتن و یا کسی که ریش خدا کلم میکنه چی حکم داره برادر عزیز را باید ما شما در نظر داشته باشیم که سنت رسول الله صلی الله علیه و salam خود ایش یکی از سنت های رسول کریم صلی الله علیه و سلم می باشه باشد خب ببینید با ترک سنت برای یک مسلمان چی نقص و یا چه می میرسد ما دو حادثه تاریخی را دو غزوه پیغمبر صلی الله علیه و اگر سرش بحث بکنیم یکی غزوه بدر بود و یکی غزوه احد در غزوه بدر مسلمان ها فی درصد ارشادات رسول الله صلی الله علیه و آله تطبیق کردند ای تطبیق عملی سنت های پیانبر الله اللہ علیه وسلم نتیجه شد؟ که هزاران ملائکه به کمک و نصرت مسلمان ها پایین شدن و وقتی که غزوه ختم شد مسلمان ها کامیاب شدن آیت شریف آمد که و ما رمیت اذ رمیت ولیکن الله رمه ای پیغمبر ای زدن زدن تو نبود بلکه ای زدن خداوند بود که با ملائکه ها و با قوت ایمان مسلمان ها دشمن های اسلام شکست داد غزوی دیگه غزوی احاد بود در غزوی احاد مشکل چی بود؟ در غزوی احاد مشکلی بود که مسلمان ها یک تیدا که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم به صفت رومات اقتداد تیر زنا را روان کرد گفت در بالای اوکو بیشینین تا وقتی که ما برایتان نگفتیم که پایین نشین اگر ما کامیاب شدیم شما پایین نشین و اگر ما ناکام هم شدیم شما پایین نشین امونجا باشین و شما خاطر که دشمن ها از عقب هم لنکانون از پشت کن شما امونجا باشین در آغاز مسلمان ها کامیاب شدن کفار گریختند ولی تعداد از روماتی که در اونجا بدن اینه هم اینجا بعضی از اینها پیش خود سنجش کردند و اعتراض کردند که پیغمبر مسلمان ها کامیاب شدند و گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اینجا 100 درصد تطبیق نکردند بالاخره شکست نصیب مسلمان هاشت و ما و شما کل ما شکسته که مسلمان ها در غزوه احد خوردن خب اگر چی مسلمان به هیچ صورت شکست نمیخوره حتی شهادت هم یک کامیابی است ولی به هر صورت ما شما دیدیم که چقدر مسلمان ها شهید و زخمی دادند و حتی خود پیغمبر صلی الله علیه و آله مبارکش در این غزوه به شهادت رسید انوال تطبیق سنت ها سبب قوات مسلمان در تطبیق تمامی احکام اسلام میشه از این خاطر وقتی که صحابه اکرام در کدام غضوی در کدام جای شکست میخوردن یکی از دیگر پرسان میکردن که ما شما کدام سنت پیغمبر را ترک کردیم که ما شما شکست خوردیم خب آلی این سوال که دوست ها میکنن که ریش کل کردن کدام پروایی داره و یا ندارم اینجا من خدمت شما چند نقطه را بحث می که شما در ختم از این نقطه ها باز خودتان و شما دو جوان خودتان باز فیصله کنین که ریش کل کردن خوب است و یا نیست اول کسی که ریش کل میکنه او در حقیقت زیبایی الهی را فراموش کرده زیبایی الهی چی هست؟ که الله جل جلوه مردها را زینت داده باریش، ریش و زنها را زینت و زیبایی داده با گیسوها پس من منعیس یک مسلمان چی را زیبا فکر بکنم اگر من ریش داشته باشم ریش داشتن من خدا خوش دارم و اگر ریش مکل بکنم دشمنای خدا ریشکری را خوش دارن شما ببینید در یک حدیث شریف است میگه لا فم الصائم اتحب عند الله من ریح المسک میگه بوی بد دهان روزدار به نزد الله جل جالوه از بوی مش کرده هم زیباتر است در حالی که شما ببینین که امی روزدار وقتی که روزه میگیری از دانشگ نوه بوی خراب میبرایه لیکن در ظاهر این بوی خراب است لیکن اینمی بوی خراب چون به اساس تقواه است این روزه گرفته از این خاطر میه که بوی بد دهان روزدار از مشک در پیش خداوند متعال بویش زیباتر و خوبتر است پس ما وقتی که رویش خدا کل میکنم روی م زیبا میشه به اصابه کسانی که انسانهای شهوتران و دنیا پرست هستن اما وقتی که ریش میمانیم چهره مرا خداوند خوش داره پس انال شما بگوین که میشه ترجیح میتین که چهره شما را خداوند خوش داشته باشه ویا چهره تانه کسایی که دشمنای خداوند هستند. دومی عیبه که ریش کردن داره است که مصرف کردن وقت است ثم لتسالون یوم عن النهیم شما در روز قیامت از نیمتهای خداوند پرسان میشین ثم تسالون حتما سوال کرده میشین لام لام توکید است تسالو تسالونه بود اصلنش تسالون سوال میشین باز وقتی که نون تاکید سقیل آمده ثم لتسالون نه یعنی حتما شما سوال میشین و پرسیده میشین در روز قیامت از وقت تا از نیمتهای خداوند یکی از نیمتها وقت است پس اینمی لحظاتی را که در اشکل کردن انسان مصرف میکنن این شما نگوین که مثلا من دردقه یا پانزدقه ریش مکل میکنم یک روز اصاب نگیرین در روز قیامت از کل عمرت لحظاتش محاسبه میشن پس روز ده دقیقه پانزه دقیقه که در ریشکل کردن مصرف کردی در روز قیامت وقتی که ساب کنی در طول عمرت اگه تو 80 ساله شوی شاید پنج رو تو در ریشکل کردن مصرف شده باشه پس آیا امی حق خداوند بر ما داده که ما پنج مای خود در طول زندگی خود به ریشکل کردن مصرف بکنیم در حالی که خداوند به وقت قسم میخوره و دوها و لیلی و ليال عشر و والصبح خب خداوند وقتی که به وقت قسم میخوره به خاطری که وقت تو بسیار ارزش دارن پس ما برای دشکل کردن در در تقسیم اوقات اسلامی جای نداریم یعنی خداوند بر ما در وقت ما اجازه نداده که شما وقت دارن وقت بله بر درس وقت داریم بر نماز خواندن وقت داریم بر ازدواج وقت داریم برای لباس پوشیدن وقت داریم اما برای شکل کردن در تقسیموقات اسلامی چیز نیست سیومی گناه که انسان های که خدا کل میکنن سیومی گناه که مبتلا میشه چیست مصرف نمودن پول است در راه که خداوند اجازه ندادن خداوند صفت مسلمانان را میگه که انسان مسلمان متقیقی است وامی ما رزقناهم یونفقون از آنچه چه برشون رزق دادیم نفقه میکنن نفقه چی هست که این اونم پول خود در راهی که خداوند برش اجازه داده مطابق مطابق و سنت پول خود مصرف میکنن پس آیا برای ریشکل کردن خداوند جل جلاله ریشکل کردن یا پول را که در ریشکلی مصرف میکنیم اینو در جمله نفقه حساب میکنه این نفقه حلال نیست پس پول در کجا رفت انسان وقتی که وقت خودم مصرف میکنه یا پول خدا مصرف میکنه؟ ایناله اینجاست که دو بانک است. رحمان بانک، شیطان بانک. وقتی که برایش کل کردن مصرف میکنیم در کدام بانک ذخیره میشه؟ در شیطان بانک. و پولی که مصرف میکنیم بر ریشکل کردن در راه خدا مصرف میشه یا در راه شیطان؟ در راه خواهشات نفسانی. در راه خواهشات و خواسته های خود انسان پس این انسان مسلمان فکر خود میگیره که من چی اشتباهی رو میگم چارمی اشتباهی که شما برادرای عزیز دارین وقتی که ریشتانه کل میکنین مخالفت با امر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مستقیم تو مخالفت وقتی که میگیم من رسول الله صلی الله علیه وسلمت دوست دارم بس چه قسم رسول الله صلی الله علیه و آله دوز داری خودم اینجا دلم در پیش یارم دوز دارم رسول الله را لکن قلبم از ما اجرای بچه فیلم اگر رسول الله را دوز داری چهرهت باز چهرهی رسول الله مشابهت بده اگر بچه فیلم دوز داری باز بگو که من بچه فیلم دوز دارم دا باز دروغ چرا میگی در روز قیامت مثلا پیغمبر صلی سلام علیه و بعد خب تو چهرهت مثل چهره چهره کی وراست تیری نام ها اندارتیکر تیکر، بس تو چریت یا چریت مثل چیری رسول خداست رسول خدا صلی الله علیه و سلام در زندگی خود ریش خدا کل نکرده بود بلکه امر کرده سعی کنین در احادیث مختلف آمده که اوفل اللها ریشای تن خوب ترک بکنین اوفل اللها دشانا خوب بکنین ارخ اللها وفر الله امام بخاری و امام مسلم از عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی نحما روایت میکنن که رسول الله اسلام فرمود خالف المشرکینه شما با مشرکین مخالفت بکنین مشرکیست بچه فلم بچه فلم ایندی مشرک نیست بود پرست نیست خدا خودمه خالف المشرکینه مخالفت بکن با امرائز مشرک وفر الله ریشایتان را زیاد بگذارین وحف و شوارب و بروتایتان کم بکنین در حدیث شریف دیگه باز امام مسلم و بخواهی نوایت میکنه میگه میکن. احف الشوارب با لها انحکو شواری با وعفو لها بروتایتان را کم کنین و رشایتان را بگذارین امن حجر سلمه که وفرو به تشدید فا من التوفیل است و هو الابقاء گذاشتن است ای اترکوها وفرتن یعنی بگذارینش خوب زیاد و اعفا و اینجا ترک کردن و گذاشتن ایش ترکوها علی حالها الى امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه میگه که ترک کردن ریش است به حالت خودش یعنی ترک کردنش به حالت خودش چی معنا یعنی ریش تو توصله چیز ورا جور نکو مثل فرانسه ورا که یک بغلی طرف بزنیم یک بغلش همی طرف بزنی کمک یکمک اینجایمانی نه کله شوان و یک خطه کنجایمانی یک خطه کن این طرف میمانی ها جوانای های بدکاری ایتالیا واره نه اونا خواه دارن علامات انسان های ایتالیا اینمی در ریش رشخندی کردن است خب پنجمی گناهی که انسان میکنن مخالفت با امر الله جل جلوهو است الله جل جلوهو وقتی که امر میکنن پس یک انسان مسلمان باید امر الله را قبول بکنه. چرا؟ الله گفته که قل این کنتم تو حبون الله فالتبیعونه ای حضرت محمد سم بر از این مردم بگو که اگر شما الله را دوست دارین پس مطابعت من را بکنین یعنی مطابعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر الله جل جلست و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه روی شایطانت بگذاریم خب این امر متعلق با کدام فطرت زمانی نمیشه که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم بیکار بودن نماز میخواندن خیال دیگه ما بیکار نیستیم 24 ساعت تقسیم اوقع داریم پس چرا نماز بخوانیم در وقت پیغمبرست هم سریال ها این دی نبود که مردم در نماز خفتن میرفتن حالا چون سریال ها زیاده دیگه ما مجبور هستیم سریال سر کنیم چرا با نماز جماعت بریم در زمان پیغمبرست هم مثلا یه قسمی نیکرهای کوتاگک کوتاگک نبود باضی باضی یک نکراک بپوشیم مثل اروپایی‌ها و روضه زمانو پیغمبران هم اروپاییای قسمی نکردن نمیپوشیدن عالمصایب رفتیم در استرالیا و انگلستان عالم رفتیم جهز باضی ماده که سایب از, از شرتکای کوتا کوتا پتلون کایوای ما قیچی میکنن ده وقتو نبود از خود خاطر نمیپوشدن ایناله پس این مانایسی چیز نیست وقتی که حکم خدا شد حکم قرآن شد وقتی که قرآن عزیزمیشان می قران عزیزمیشان تا روز قیامت حقمش باقی است آیا پیغمبر تنها پیغمبر بر مردم اون وقت بودن خیر پیغمبر صلی الله علیه و پیغمبر بر تا روز قیامت بر هر مسلمان است پس وقتی که گف پیغمبر است فکرگو که نمیاله موضوع در زمان پیغمبر صلی یعنی اگر صحابه کرام او وقت پلریش و ماشیدیش پیدا میشد ریش خدا کلم کردن مخالفت با پیغمبر میکردن یک نوه تهمت است که ما سراغ صحابه کرام میکنیم جدا اگر تواضع کنه خب ما, ما اینجا مییم ایناله خب ششمی چیزی که از مخالفت با چهره سنت و طریق رسول, رسول الله صلی الله علیه و سلم است. امام مسلم هز از وقت جابر رضی الله تعالیم روایت میکند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم کثیر شعر لحیتی میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بریش مویریشش بسیار کثیر بود یعنی پیغمه سفر مویریشی بسیار کلان داشت پس ایناله اگر یعنی انسان که میگه در وقتی میگه کثیف اللحیتی یعنی کثافت در زبان عربی بمانای زیادت هست عظیم اللحیتی و عذرت انس چی میگه میگه و عن انسن میگه کانت اللحیتوه سیگه بنامه نقطه با نقطه چیری پیغمه سفر بیان میکنه ان سمے كانت لحیته قد ملت من هنا الى ها هنا یقسم دس قدمی کنه بگو پیغمبرستان ریشش کمال اینجا بود که جای ما چه خدا ها خدا بازی رو تراش میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلام تو نمیکرد تو نمیکرد که خدا بازی بهت یکم خدا قدر تراش بکنه یکم قسم تراش بکنه و باز سر ازو سر دیش خود 12 قسم هنر خدا سر ریش خود تشخیص برادر هنر ده در تطبیق تو اگر عقل داری از عقل هنر در تطبیق اسلام کار بگی ایناله مخالفت با روش تمام پیغمبران مخالفت با چیست؟ رویش روش تمام پیغمبران پس پیغمبر سم گفت که ما آمد و جای یک خش در تعمیر کم بود بود ما جای خشته پوره کردم پس این برای ما و شما صلی الله علیه وسلم به سلسلی دیگه پیغمبر ها بود تمام پیغمبر برای که میگیم آمان الرسول و بی ما انزل الیهی من ربیه و المؤمنون و المؤمنون کلون آمان بالله و ملائکته و و رسوله وقتی که ایمان داریم به پیغمبر های خدا و تمام پیغمبرا ریش داشتن پیغمبر ریش کل وجود نداشت این مسیحی هستند. مسیحی ها چی کردن؟ اونا چون بیدین هستن در وجود خدا هم تصرف کردن تصویر شکشیدن حضرت عیسی علیه السلام در فلسطین تولد شده برای عیسی علیه سلام تصویر شکشیدن چشمه هایش سو ساختن اروپایی ساختن مویه سرخ ساختن اروپایی ساختن چه سرخ و صفحه ساختن در خدای خود هم تصرف کردند. بیبی مریم هم ساختن یا خارش مثل یاغار اروپایی ها و شما اکثر از بیبی مریم انکه میکشن یاغار اروپایی و چیزای رو جور کردن شما ببینین کنا در هر چی تصرف کردن اما پیغمبرای حقیقی که پیغمبرای خداوند بودن و عیسی علیه السلام و موسی علیه السلام و سایر پیغمبران اینا چی بودن این پیغمبرا کلشان دیش داشتن از این خاطر بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها چی میگم بیبی آیشه صحیف میگه که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم گفت که عشرون من الفطرت ده چیز از فطرت است فطرت چی مانه؟ یعنی فطرت سالم انسانهای با تقوست که پیغمبرها در رأس از اینا بودن قص الشارب و اعفاء اللحا و سواک و استنشاق الماء و قص الازفار خب ده تا چیز است منطقه جا و اعفاء اللحا گذاشتن ریش ای از سنت و طریقه تمام پیغمبر است در توضیح از این حدیث مولانا خیلی لحمد سحاران پوری رحمت اللہ علیه چی میگن؟ یک کتاب نشتا به نام البذل المجهود شرح سنن عبی داود در شرح سنن عبی داود چی گفتم؟ میگه رسول الله سم وقت گفت که عشر من الفطرات ده چیز از فطرات است یعنی ده خصلت از خسلت های پیامبران است که در این آیه به ما دستور داده شده تا از آنها پیروی نماییم. اولئک که حداهم الله فبهداهم اقتده اینی کسایی بودن که الله جل جلو اونا رو هدایت کرده پس شما چی کنین؟ به هدایت از اونا اقتدا کنین به, پی... به پیغمبر شما اقتدا کنین اشتومی گناه رشکلی چیست که انسان رشکل مخالفت میکنه با تمام آل بیت و صحابه پیغم و سلم تو میگی من امام حسین خوش دارم آیا امام حسین رش خدا کل کرده بود؟ نه تو میگی من ازره تالیر خوش دارم آیا ازره ریش رش خدا کرده بود؟ نه خیل. آیا آل بیت رش خدا مثل تو واره منتعی کرده بود؟ که میگی نه ولی ما اونا رو خوش دارم ها؟ نکردن عزرت علی عزرت حسین صحابه اکرام عبوبکر عمر عثمان انس بلال هر کدام ازنار رو که ببینید اینا ریش داشتن لیکن بعضی از هنرمندای فاسق و فاجر که بعضی از فیلم‌ها ها را ساختن چه این صحابه مطابق مئل خود مثلا در بعضی فیلم‌ها ها ریشکل چیز کردن ای yes. از اشتباهات اونمون کسا است که فیلم میسازن و اونها تمام بخشها رو چیز نکردن بعضی در بعضی فیلم‌ها شما ببینید پس تو ضروري است که هرچی که در فیلم بود را در فیلم بگیری به خاطر ازی که در فیلم که است مثلا فیلم یوسف علیه السلام سریال یوسف علیه السلام ماجور کردن در سریال یوسف علیه السلام کل قصه یوسف علیه السلام در یک ساعت ختم میشه خب وقتی که می خايم از یک سریال یک ما جور بکنن مجبور هستن 80 فیصد قصه ی از, از کتاب های قدیمی از بایبل گرفتن ای پوتیفا رو و رو میچوچتو و, و اینا پوزش گرفتن 80 درصد از اینا ها گرفتن ولی شما در بایبل هست چون کلی بایجزیاتش قرآن نمیدم قرآن کتاب قصه خانی نیست قصه‌ای که مثلا زلیخا دوباره پس جوان میشه ایره از قصه های خرافاتی که در بین مردم رواج داره در قرآن سنت نامده به ان اشترات فیصد عزیر شهست فیصد این از اسرائیلیات گرفتن از کتابهای قدیمی بایبل و تورات انجیل و بیس فیصد دیگه از یکی است از قصه های خیالی است که در خرافات و قصه های خیالی که یک هنرمن در عالم خیال بعضی را خیالی تصور میکنند. ده فیصد قصه یوسف علیه السلام مطابق با قرآن است ما شما ببینیم که وانا ما در فلانی دیدیم یا مثلا در دنیا اصرار ما که دنیا اصرار مثلا در ترکیه که مشکل شانی است که اونجا حکومت ترکیه ریشداشتان نمیمانه مجبور است که م هم چه پتراش کنه بزور است بزور است حکومت سیکولار است نظام اسلامی رو نمیگذاره بناهن ریشکل کردن. اشتونی بدیشی است که مخالفت از با طریقه اصحاب پیغمبر و آل بیت پیغمبر تو میخوای که مثل اصحاب پیغمبر و آل بیت پیغمبر باشی باید مثل از اون خدا بسازی اگر میخوای مثل دیگر وره باشی در دلت کسی دیگه بر زبانت همگو یا در دلت پیدا سنم عیبه با کافر و ظاهر مسلمانی چیزو در زبان میگه که او فلانی جان من خوش دارم. ای محمد خوش دارم مال محمد خوش دارم اصحاب محمد خوش دارم آباز دادلت میگه نه من بچه فلم خوش دارم ما چهری من مثل مشرکین میسازم مثل از اواره چهری از او بسیار خوبش هست مویای از او بسیار خوبش بود از او بسیار خوبش بود نهومی اشتباهی که برادرای ما که ریشهایی خود تراش میکنن گناهشان چی میشه که مشابهت هست با کافران من تشبه به قوم فهو هم کس که مشابهت باید کافر بکنه حالا شما هم تصاویر که نشان میده ریشدار چهره مسلمان؟ از این خاطر کافر ها چی میگن میگن که ریشدار کسی چهیه تروریست، چهیه قاتل است. بر مردم هم تبلیغ میکنن. میخوان که ریشدار مسلمان به نظر مردم بد نشان بدن. و ریشکله. بسیار خوبش نشان میدن. از این خاطر مشابهت با کافر میشن و کافر از این کار تو بسیار خوشحال میشن. یک نفر ریشدار در متفسور شوه و امریکا رو بگیر دمرویش به و یک تا ریشکل. ریشکل هم میگه برو بخیر برو برو بخیر تو از ماستی. برو. Go ahead. در حدیث شریف دیگه امام ابو داود رحمت علیه از حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی نحمر روایت میکنه که رسول الله اسم گفت که من تشبه به قومم فهو منهم. کسی که خودمو با باید قوم کرد او از جمله از اونا ما پرسان کردیم یک وقت دمی من به شک بودم ولی یک نفر خود چری خود مشابه میسازه با دیگران ولی چی پروا میکنه میگه نه اساس مشابهت محبت قلب است خانید بچگک شد صحیح نه چرا نام بچه تحلیل نمیونه میشه چرا نام شخص سید نمیمانی؟ چرا نام شبو بکر نمیمانی؟ چرا نام عیسی نمیمانی؟ چرا نام شد عبدالله نمیمانی؟ نه والا عبدالله گونه شده وسایل گونه سی نامر می نامه که اس گونه شده خی کدوم نام نواز تو؟ کده هممه خوش داری؟ میگه نامه کشه گاتم میمانم پس این محبت از حسین و علی و محمد و ابراهیم و موسا کرده محبتش با کی زیاده است؟ با یه چوچه وندو با یه مشرک با یه نام مشرک. پس این محبتش با او زیاده است این حال وقته که تو اگر دوست داری پیغمبر و اصحاب پیغمبره پس ناماش سرولاده اگر تو واقعا راسوی سی اگر تو اونا را دوست داری پس تو چیریت هم با, چ... با چیری از اونا مشابهت نزن حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیه عن از عن جدیه رسول الله صلی الله علیه سلم روایت میکنن لیسمنا خب رسد رس خب خب دقیق گوش بگن گفای پیغمبرم لیسمنا من, من تشبه به غیرنا کسی که بغیر از ما مشابهت کرد از جمله ما نیست لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصارى خدا مشابهی با یهود و نصارا نسازید با یهود و نصارا خدا نسازید بعضی سلی به دگردن خود میپرتن بعضی کساس چهره خود مثل یهود و نصارا میسازن پس ما باید فرهنگ فرهنگ ایمانی خدا چهره دیشکل کردن بعضی کسا هست میگن که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم پل و ماشین ریش نبود خدا غرقت کنن در دریای رحمت خود چون دروغ میگی تاریخ بخار آید او وقت کسرا ریش داشت یا ریش خدا کل میکرد عراوه ابن ابی شهیبه ابن نبی شایبه رحمت الله علیه روایت چه چی روایت میکنه؟ این مبارک این مبارک میگه ان رجلا من المجوس جائلن النبي صلی الله علیه وسلم میگه یک نفر مجوسی مجوسی کسایی بودن که در این منطقه ما و شما بابا ما و شما مجوس ها بودن آتش پرست ها بودن یک نفر از آتش پرستا میگه جائل نبی و ساسم پیش پیغم بستم آمد وقت حلق لحیته یعنی کل کرده بود لحیته در زمان پیغم بستم پلی ریش بود نبود وقت حلق لحیته و عطال شاربه بروتای خلقی ها واره دراز مانده بود خلقی بابا وقتی که بروتای دراز دراز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر مس بردی چی گفت نه هاذا هیچ چیزی کدی از زروت قال گفت امی مجوسی آتش پرست هذا دینه نا چی میگه هذا دینه نه اینم دین ما دین ما برام میگه ریشتنا کَل کنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میگه رسول الله ص چی گفت لَكِنَّ فِي دِينِنَا اَنْ نُحْفِ شَوَارِبَ وَاَنْ نُعَفِيَ اللَّحِيَ اما در دین ما بریز مجوسی میگن اما در دین ما چیست؟ که ما های خدا کم کنیم وریش خدا بگذاریم خب اینال تو از کجا پیدا کردی که در زمان پیغمبر سنپل ریش و ماشین ریش نبود یاریش کلی نبود این حدیث شریف میگن و اخرج الحارث ابن ابی اسامه عن يحيى ابن کثیر قال اتا رجل من العجم المسجد می یک نفر از عجم از بلاد عجم این از کشورهای ما و شما آمد در مسجد و قد وفر شاربه و جز لحیته می گو های خدا در آسمان و ریش خدا تجزیه کرده بود تجزیه چی مانا؟ یعنی کسی بقل زده بود از اینجا زده بود و کمک هکه خدا میک تراش کرده بود و از... ایشید. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ پیغمبر صلی الله چی چیز که قسمی بسازی؟ قال انا ربي امرني بهذا. اتون آتش برست بود پرست بود, بود با رس فقال گفت خدای ما به امر کرده که اینو قوریت نموسه. رسول رسول ان الله امرني اوفر لحیاتی. و احفی شعری بگفت الله بر ما عمر کرده که ما باید ریش خدا بگذارم و برود های خدا کم بکنم و ابن جریر رضی هو از انزاید ابن حبیب قصه دو فرستاده کسرا را روایت میکنه کسرا کی بود کسرا؟ کسرا امی امپراتور فارس بود ایتو نفر سفیر خدا روان کرده بودن پیش پیغمبر سلام ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن جرير سمعي كه يارديشون آمدن پشت پیغمبران <تصفح> وقت حلقا شما مين ده زمان پیغمبر اسلام چی نبود تلریش آمد که سرا بود این منطقه بود چطور نبود یعنی اگه وسال پیشرفتهش که حالا ماشینکای که حالا ترو ترو تراش میگی قسم نبود از چاقوی دراز که از خوب بود <تصفيق> از پاکی, های، یکی، یکی پاکی، یک یک یک پاکی یکای خرد خود باز بازار آمد یک وقتی که ما پیش یک خدا ببخشید یک دلاگو بود سر ما تایر کردن ماشین اگریم تو بازی قسم چاقوی دراز یه یعنی قدری داشت باز مرغم بچه مولانا صاحب تو آمدی و ما طرف خود تام خودارو پدرتام خودام پدر تا سر تام ماشین ترکی برات تیار کنم یا الجزائری تیار کنم یا ایرانی تیار کنم یا فلانی تا گفتم گفت حاجی صاحب ا سالمون به خیر از گمش مقصد من قواریم میبی قواریم به کی میمونم من قسم جور که مقصد سر من سایبی گیر پای ماشینی که بند کردم هر تار که عمو تو میگرد یک تار موی منو کش می کرد اشکوار من تشعر راست میده اخر گفتم تو بس ترکی شو می از از ایرانی شام تیر از فرسوی شام تیر امی سر منو گفتم مهلا بت از باز باز چ... چیزای کلان کلا نه کشید باز رو خوب در سنگ تست کرد و کرد و کرد و کرد و کرد باز باز بغلای چیزای منو کمی هر کش می کرد چانزه قطعه چیز من اما اولین آخرین بود که در دوکان از دو رفتم دیگه اینا در گفت سر چیز بود پس بود چیزایی که مردم ریش خودم کلک می کردن یازده همش گفتم که شاب... ریش کلک کردن مشابهت با زنها و دخترها هست <تصفح> زبای جان ما از دخترها چی کم هستیم باز امروز مسابقه مدل با این دخترها و بچه هست جالب شیست هر بچه که خود از دختر که زیبا مدل مود بنا ان شما آقای گل وقت کریشتان کم میکنین و چپ تراش میکنین و داینه دا خود سل میکنین خدا مشابه واکی میسازین با زنها و دخترا میسازین و رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته که لعنت الله علی المتشبهین من الرجال بالنساء لعنت خدا هست بر مردهایی که خدا مشابه واکی میسازن وازان ها از این خاطر نخودن مشابه بازن ها میسازن و دهن دیگرارا تشویق بکنین. پر به خدا کل نکنین زبی جان. به خدا ق خوب بگید که نگو. چتو جان؟ پس هر کاری که مشابهت بازنام شه، بسیاری کسا در شب خینه در استفاده خینه میمانن. خینه خو کار زنا هست. پس تو جوان مسلمان نگه دست اخیرا کنی. اون کار زنا را برای زنا بود. بسیاری کسا لاکت میپرتن مثل زناوار. لاکت خ کار زنا هست. تو خود مردی. تو کمک خدا قوی بساز. وقتی که ریش خدا چپه تراش کرد باز آیس آیسه باز در خوی زنانه پیدا میشه باز کته یک روز یک بچه آمده بی دراز دراز داشت پیش دلاغ آمد که مویای مک پا کل کن چرا بیا در تخمویای چ... چقدر روغن زدی و چربی زدی گفت حالا دمی راه میرفتم یک نفر بر من یک دو نفر پرزه رفت گفت کت هم شعره خود مسابقه دادن گفتم فورا آمد گفت بسیار زورش داده بود باشید. اناله یک اصی که چیز است بسیار خدا قواریخ و زناوار میسازه و کت دخترها و بازیگر است. ای ایش کلده مدل خدا جور میکنه. هم یک آدم ریشدار که بره مدل هم بازو نمیگیره. زبا جان، ما از دخترها چیکام هستیم؟ باز امروز مسابقه مدل این دخترها و بچه‌هاست. جالب شیز. هر بچه که خدا از دختر که زیباست مدل اموس. ها؟ دیگه این والا، مشابهت با زن‌ها و دخترها هست و مرد باید خاصیت‌های خاصی بر دانه خدا داشته باشه. دیگه چی وقتی که انسان زیاد ریش خدا کل کت باز ریج‌داره بدش می‌آید. ریج‌دار چی میشه؟ بدش می‌آید. یعنی وقتی که ریج‌دار بدش آمد، دیگر ریج‌دار عزت مهاماسه سلام سو بدش می‌آید. صحابه کرام بدش می‌آید. آل بیت پایگانبر بدش می‌آید. هر کسی که چهرهش مثل چهره رسول خدا سلام بود بازو بدش می‌آید. این مشکل دادن. اما انسان که ریش خدا کشش باز خوشش می‌آید. چواردومی گناه چی که گناه برش عادی میشه چون یک روز بعد میشه کلکدان میره پس ایش ای کلکدان برات چی میشه چیز عادی میشه گناه عادی میشه وقتی که روز ریشکل کردن عادی شد دیگه چیز عادی شد آیسا آیسا آیسا آیس گناه ها را برش شیطان عادی کرده میره و پانزدمی گناه چیست؟ که این فکر میکنه بازیکه که میگه ریشکل کردن گنای صغیره هست اما بشنوین علما اسلام چی میگن ما اسلام یک لا صغیره مع الاسرار و کبیرت کبیره مع الاستغفار لا صغیره مع الاسرار وقتی که در گناهی صغیره یک دفعه کردی صغیره است دو دفعه کردی صغیره است اما وقتی که تو اصرار میکنی دوام دارید در دا طول سال همین گناهی صغیره میکنی ما میگه لا صغیره مع الاسرار وقتی که گناهی صغیره هم باشه وقتی که تو اصرار میکنی و هر روز رو تکرار میکنی با بدل میشه با عریش گل اصرار نمیکنه میکنه نمیکنه میکنه به خاطر ذکر ریش خودم هفت دو دفعه سه دفعه ها چطور قندل جان تو هر روز ریش یک روز بود دو روز بود ها اصرارش همین گناهی که داره چی ترجیح دادن صورت غیر اسلامی نسبت به صورت اسلامی ریش علامت چی است علامت یک مسلمان است و بری شی و رشکل چی علامت غیر مسلمان است این ترجیح میدهد که چری و صورت اسلامی نباشند پس یک گناه هست دیگه چی است راضی ساختن غیر مسلمان ها هست غیر مسلمان ها هست چیزی زیاد کی راضی می بشه کل ترضا عن اليهود حتی حتا تتبع ملتهم از خاطر بسیاری کسا میگه که مد مؤسسه کار میکنم بهش محمد گفتم است جان من مد مؤسسه کار میکنم اگر ایش باز مؤسسه من را از کار می کشم بخاطر که اون مؤسسه چیست؟ یهود و نصاره است ولن ترضا انکل یهود و ولن نصاره و هستو رازی نمیشه یهود و نصارا تا وقتی که مطابق برنامه از اون ریشه برش پتراش کنی سیزنی؟ نه بازو میگه آه این یکی از برنامه های ما را قبول کرد امروز که سرطوری شکل کرد دیگر روز باز برد میگه که در وقت you are working with us no namaz, no salat. نماز نیست وقتی که دیگه در نماز پاشه قطع میکنن دیگه از برش میکنی که نکلاز کلوز. که که قسمی تو پیشیدی در مسخ قسمی باید نکنی اینه خلاص آیستا آیستا و قرآن میکن شما به گام های شیطان یک قدم پیش می آید به قدم های شیطان پایی تا نمان که امروز ریشک تکل کرد ها؟ باص که آستا ایستاد، ایستام کم، کمپیش اومده میره. ده روز اول برش میگم که خاک ده سرت مزگوشنگی میموره میش تو کار نمیکنی وقتی که تو خائن دشمنی چری رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستی. خدا رو خفا میسازی، پیغمبر خدا رو خفا میسازی. به خاطر اینکه در معصر، امی اولادایی که از اون پسی ماشه که تو از معصر میگیری، به خاطر از این رشتہ تو کل کردی، در روز قیامت اینا میاد سر تو شهادت میت این پدر بی‌غیرت و ما از بی‌غیرتی به خاطر کار کردن در معصر شهادت کرد. ای روزی و, و فی سمای رزق کن و ما توعدون ای مسلمان رزق تو رو خداوند در آسمان تقییم کرده کل مؤسسات بیاگه اگه آب از آسمان نبیگه خوش سالی و گشنگی میمونی اما اگر باران شو باز ایواز یک فصل چار فصل از امون زمینیت میگیری یک جریب زمین داشته باشی که رحمت خدا نازل شد باز اونجا همه چیز میگن. ایناله علمای اسلام ابو حنیفه امام شافی، امام مالک، امامایی که از اول اسلام هستن، کلی از اینا به اتفاق همه این که ریش کل کردن، حلال هستی حرام؟ حرام است. پس نوزدهمین گناهی از اینم انسان چی مرتکب شدن چی است؟ مرتکب شدن و مرتکب حرام میشه. از این خاطر این انسان که ریش کله میکنه، پس این باید بفهمه که در هر دروز که ریش خدا کل میکنه، این اینقدر جزاها را میبینه و مرتکب حرام میشه خب بسیاری کسان میگه که والا قرن بیستیک هست در قرن بیستیک آیا ما در قرن بیستیک سنت های پیغمبر را تدبیق نکنیم آیا ما در قرن بیستیک مخالفت با رسول خدا بکنیم آیا اینو ای گفت کی میزنن اساس ای گفت از کجا پیدا میشن گنامونا شد اگر تو کشدی باش در قصه ای سنت ای گفت نباش ای قرن 21 مردم در کجا رایزده ما پیشت از ایگپ ها گشتد چقدر پس مانده بخی ایک چه پدراشت خلا شو برین بخی بخی دگر اصاز ایگپ گپ مسلمان ها نیست برادرهای عزیز ایگپ گپ تونیست ایگپ گپ تونیست باور بکنین گپ هایی را که من پانزه سال پیش در کشور عربی می شدیدم و ما در در ما خانده بودیم امروز اورا جوانای افغانستان تکرار میکنن چرا تکرار میکنن 20 سال پیش ای به درس خوانده میشد در کشور کشورها بود گپای مستشرقین است گپای نصرانی سازا هست اونا میگن که ای اسلام که هست احکام اسلام که هست نمیگه که تو مسلمان هستی دینت به درد نمیخوره بلکه آهسته آهسته میخواد را از احکام اسلام دور بکنه بنا میگه که در قرن 21 که تو زندگی میکنی قرن قرن اسلام و دینداری و نمازخانی و رشماندن و ایگه پانه است یعنی آله اونا میگن که ای اسلام کونه شده علی عیاض و و ای کفر است به وقتی که کونه شده ای به قرن بیستیک نمیخانه تو که در قرن بیستیک زندگی میکنی تو باید یعنی در قرن بیستیک چی میگه در قرن بیستیک خلاص ریشکتا کلبو کن خانمتا دیگر اوز که کردی. خانمم تا به سیستم اروپایی ها جور بکو وا میگن منظور شان از قرن 21 چی است یعنی قرن 21 هست که امروز ریشک تکل کردی دیگر روز مثلا وقتی که استباش کردی اروپایی که قرن 21 چه قسم زندگی داره شوارش ما خود ما اروپا رفتیم در اروپا رفتم در دکلاندغار اونجا ساس یک نفر میای بر خانمش میگه شو رای دانس ویت یو خانمش میشه که تو دانس بکنم باز میگه yes. خود شوارش میگه یک yes. okay, sure, sure. sure. ما مرگ بگو یعنی شو یعنی خوب است بازی سر دست از خانم مزیره میگیره با شاورش قرار شیشه بود و کمر ازی اندافت دیگه اردی از دانس میگه با شاورش قسم می اوکی اینیس قرن یک نه؟ اوکی یعنی یک اینا اگه تو ده قرن یک داخل میشه باز خطوبات شیطان امروز که سر تریش تکلکات کرد باس باز سر مادر اولاداتم دانس میکنه های قرن یک است رو سر شراب خواسته قرن یک است اما رسول الله صلی الله علیه و سلم ما مسلمان ها ایمان داریم که پیغمبر ما تا روز قیامت اینمی قرآن است و اینمی سنت رسول الله و این ما افتخار بگنم که در قرن بستی یک با وجود از که ما انسان متمدن و پیشرفته و تحصیل کرده هستم از ماوتو کرده صحابه پیغمبر خوب متمدن بودن خوب پیشرفته بودن ماوتو چی داریم؟ شما کتاب گستاولوبون فرانسوی را بخوانن نشته تمدن اسلام و عرب میگه معاویه ابن ابی سفیان وقتی که رهبر مسلمان ها بود 3000 هزار کشتی جنگی در بحر داشت او تمدن داشت یا ما که یک سیکل جنگی نداریم او کتریش خود 3000 کشتی جنگی داشت رهبرای چیز که آمدن رهبرای اروپا وقتی که آمدن مسلمان ها تمدن داشتن که فقهای های اسلام خیستن گفتن که فروختن سلا سر کافرها حرام است. یعنی اتمن سلا داشتن که می فروختن مسلمان ها خودش سلام می سخت فرانسویا می بدن از مسلمان ها سلا می خریدن او متمدن بود با اودریش خود و تو توکت چپترا شد یک دانه افتاولگن جور نمیتونی. متمدن خوب است که اختراع داشته باشه اکتشاف داشته باشه متمدن اونو کسایی بودن که شما جنگ های سلیوی رو بخواین که یک رهبر انگلیس آمد با تخلص خدمانده بود که ای فلانی سلطان قلب الاسد هارت of Lion. مسلمان ها گفت کیست قلب, شیر؟ قلب شیر که نیزه که مسلمان آمد قلب شیرش از پیشش گرفتن در قلبش قلب روبار رو ماندن کوکو کوکو قلب شیر پس بین تو قلب شیر رسی قلب شیر رو بر... لیویس ششم پاچای فرانسه را در زیر در بردن شده یک گاوخانه بندیش کردند پاچای فرانسه آمد بندیش کردند باز بعد از اونا کتاب نوشته کردن گفتن برادرای عزیز بر اروپایی ها گفتن گفت برادرای عزیز کت مسلمان ها جنگ مستقیم نکنین جنگ فکری کنین در لباس دشمن نبهین در لباس دوست بهین و کوشش کنین که از داخل اینا رو چی کنین از داخل تورا سوان میکنن از داخل در لباس دوست که این حکم اسلام خوب نیست ای خوب نیست، یک رو دیش تو اعتراض میکنن دیگه رو سر حجاب خانم اعتراض میکنن دیگر رو سر چادر خواهرت میکنن نمیکنن سر چادر خواهر ما اعتراض دارن ندارن خلاص وقتی گفتی مادا قرن 21 زندگی میکنیم، قرن 21 مشغول هستی، در قرن 21 چادر قاهرهت و اسوک، چادر خانم تئوسوک لباس هجاب اوسوک ریش تئوسوک، این لباس هایی که تو میپوشی که با ستر است ایر اوسوک و تمام بی ها را از این خاطر برادر عزیز اگر تو مسلمان هستی دین اسلام دین است که این نمیخیسم که در قرن اول اسلامی بود تا اونم قرن آخر کل چیزی اینم اسلام است و اینم دین ما هست و اگر ما واقعا می خوایم که امر خدا را سر خود تطبیق بکنیم می خوایم امر خدا را تطبیق بکنیم رو رو اه؟ می خوایم که امر رسول الله رو تطبیق بکنیم بلی. می خوایم که چهره ما چهره رسول الله صلی الله علیه به محمد دوست داریم بله دوست داریم حضرت حسین دوست داریم حضرت علی رو داریم بلی. صحابه پیغمبر رو داریم وقت کنار اینا رو دوزیم کلشون ریش داشتن پس ما باید از دوسی خود چری خود مثل از زناب بسازیم یا نسازیم. ان شاء الله تعهد است. سبحان ربی کربل زاده ما يصفون و سلام على المرسلین و لله رب العالمین.